کتاب فقط برای تفریح فصل دوم تولد یک سیستم عامل بخش دوازدهم نوشته لینوس و دیوید دیاموند سخنرانی در اد به من ثابت کرد که تحت هر شرایطی می توانم جان سالم به در ببرم حتی از وضعیت حادی که در آن لازم باشد جلوی کلی غریبه بیستم و همه حواسشان حواستشان به من است. اعتماد در دیگر زمینه ها هم داشت در من رشد می کرد. کم کم لازم بود در مورد بروز ها و پچ لینوکس تصمیمات سریع و قاطع بگیرم. این تصمیمات باعث شده بود به عنوان رهبر یک جامعه در حال شکلگیری احساس اعتماد به نفس بیشتری داشته باشم. تصمیمات فنی هیچ وقت ساز نبود. مشکل اصلی وقتی بود که باید به یک نفر آن هم به شیوه سیاستمدارانه، مدارانه بیگفتم که راهحل فرد دیگری را به راه حل اول ترجیح دادم گاهی کار به سادگی گفتن فلان اصلاح دارد به خوبی کار می کند پس چرا همان را استفاده نکنیم بود؟ روش من همیشه این بود که اصلاحی که از نظر فنی بهتر بود را انتخاب می کردم. با این کار هیچ وقت لازم نبود بین دو برنامه نویس که کتایشان در رقابت با یک دیگر بود داوری کنم. همچنین با اینکه آن زمان نمیدانستم، این روشی بود که باعث شد مردم به من اعتماد کنند و وقتی مردم به شما اعتماد کنند نصیحت شما هم کاراتر است و نصیحت خوب باعث اعتماد دوباره می شود. شکی نیست که باید قبل از به وجود آمدن اعتماد اولیه برای آن یک زیربنا فراهم کنید. به نظرم این زیربنا نه به هنگام نوشتن کرنل لینوکس که به هنگام قرار دادن آزاد و رایگان آن در اینترنت ایجاد شد. مردم وقتی اعتماد کردند که من لینوکس را روی اینترنت گذاشتم و به همگان اجازه دادم تا آن را اصلاح کنند یا ارتقا دهند هر کسی که می‌خواست به پروژه کمک کند، می‌توانست کودهایش را ارسال کند و من در این مورد که آیا این کد به کل پروژه کمک خواهد کرد یا نه، تصمیم می‌گرفتم. همانطور که هیچ وقت به این فکر نکرده بودم که لینوکس در جایی خارج از کامپیوتر من اجرا شود. به این هم ن‌اندیشیده بودم که روزی رهبر گروهی شوم. این موضوع خود به خود اتفاق افتاد. در دوره یک گروه مرکزی 5 نفره بیشترین فعالیت های دنیای لینوکس در بخش های مختلف راه عهدهدار شدند. آنها مثل فیلتر عمل می کردند و مسئولیت حوزه‌های مورد نظر خود را بر عهده گرفتند. خیلی زود یاد گرفتم که بهترین و مفیدترین روش رهبری این است که به افراد اجازه دهیم کارها را به این دلیل که به آن علاقه دارند انجام دهند. نه به این دلیل که من به انجام شدن آن کار علاقه دارم. بهترین رهبرها همچنین درک می کنند که چه زمانی اشتباه می کنند و می توانند خود را از پروسه بیرون بکشند. همچنین بهترین رهبر باید بتواند به دیگران اجازه دهد که به جای آنها تصمیم بگیرد. بگذارید دوباره جمله بندی کنم. بیشتری موفقیت لینوکس به خاطر این زعف در شخصیت من بود. یک، من تنبل هستم، و دو دوست دارم به خاطر فعالیت های دیگران اعتبار کسب کنم در صورتی که من این دو خصیصه را نداشتم الان مدل توسعه لینوکس اگر این همان چیزی است که مردم آن را مینامند به جای شبکه‌ای در همتنیده از ستها هزار مشارکت کننده که از طریق گروه خبری لینوکس و مباحثات میان توسعه دهندگان در مراسمی که شرکتهای پشتیبان مالی آن هستند و در هر لحظه حدود چهار هزار پروژه را پیش میبرند محدود شده بود به نیم دو که هر روز به هم ایمیل میزدند و بعد برنامه می نوشتند. این روزها در بالای شبکه برنامه نویسان کرنل لینوکس، رهبری است که هیچگاه گاه رهبری نداشته و هنوز هم ندارد و کارها هم بسیار خوب پیشرفته. من چیزهایی که بهشان علاقه چندانی نداشتم را کنار گذاشتم اولین آنها سطح کاربر در تضاد با سطح عمیق کرنل یعنی سطحی بود که با استفاده کنندگان از سیستم ارتباط برقرار می کند اول یک نفر داوطلب بر عهده گرفتن آن شد بعد روند نگهداری کل زیربخش‌های آن به شکلی ارگانیک تقسیم شد. مردم می‌دیدند که چه کسی فعال است و به چه کسی می‌شود اعتماد کرد و به او کار بیشتری دادند و اعتماد بیشتری کردند. رأی‌گیری در کار نبود. دستوری هم در کار نبود و هیچکس هم کسی را حسابرسی نکرد. اگر دو نفر یک نوع درایور نرمافزاری خاص را توسعه دهند، گاهی من هر دو را قبول می‌کنم. و بعد در عمل می بینیم که کدام مورد بیشتر استفاده می شود. کاربران معمولا گرایش دارند که یکی را به دیگری ترجیح دهند. اگر هم هر دو شاخه مورد قبول قرار گیرند و کاربران بین آنها پخش شوند، آنها را در دو شاخه متفاوت نگه می داریم و هر کدام کاربران خاص خود را حفظ می کنند. چیزی که معمولا آدم ها را متعجب می کند این است که مدل نرم متن باز واقعا کار می کند. به نظرم این میتواند برای درک ذهنیت هکرهای جهان نرمافزارهای افزارهای متن موثر باشد. البته من معمولا سعی میکنم از لفظ هکر استفاده نکنم. به هنگام صحبت در جمع خصوصی و فنی من گاهی خودم را هکر میخوانم. ولی اخیرا این لغت معنی دیگری پیدا کرده. بچههای نوجوان که کار مفیدتری از رخنه به بانک های اطلاعاتی شرکت ها بلد نیستند و وقتی را که باید صرف کارهای داوطلبانه در کتابخانه یا حتی دوست پیدا کردن کنند صرف اینجور فعالیت ها می کنند. حکرها یا برنامه نویسانی که روی لینوکس کار می کنند، معمولاً معمولا ارتقای شغلی، خواب، مسابقات ورزشی کودکانهشان و حتی رابطه را فدای برنامه نویسی برای لینوکس می کند. آنها از این لذت می‌برند که بخشی از یک پروژه جهانی هستند. لینوکس بزرگترین پروژه جمعی جهان است و تلاش خود را صرف این کردند که زیباترین تکنولوژی جهان را در اختیار هر کسی قرار دهند که خواهان آن است. به همین سادگی به همین مفرحی. خب انگار دارم شبیه تبلیغ رسانهی بیشرمانهی می ای که هدفش مشهور کردن خودم است هکرهای های متن باز نمونه های تکنولوژی که مادر ترزا نیستند اسم آنها به همراه مشارکت در فهرست اعتبارات و فایل تاریخچه که همراه هر پروژه است میآید. آید کسانی که مشارکت خوبی داشته باشند به راحتی توسط کارفرمایانی که برای پیدا کردن بهترین برنامه نویسان این فایل ها را زیر و رو می کنند استفاده می شوند همچنین خیلی از حکرها به دنبال اعتبار و شخصیتی در نزد دیگران هستند که یک مشارکت درست و حسابی می تواند نصیب آنها کند این انگیزه قوی است همه دوست دارند در چشم بقیه معتبر باشند مشهور شوند و شعن اجتماعی خود را بالا ببرند توسعه متن باز این امکان را در اختیار برنامه‌نویسان می میگذارد. نیازی نیست بگویم که سال 1993 را هم مثل سالهای 1992 و 1991 گذراندم. چسبیده به کامپیوتر اما این جریان در حال تغییر بود. در ادامه راه دانشگاهی پدر من هم در دانشگاه هلسینگی کمک استاد شدم و در نیم سال پاییز کلاس سوئدی مقدمهی بر علوم کامپیوتر را تدریس می کردم. اینگونه بود که با تاو آشنا شدم. او نقشی حتی بیشتر از کتاب سیستم عامل‌ها طراحی و اجرای اندروتان وام در زندگی من داشت. ولی قرار نیست حوصله شما را با جزئیات آن ماجرا سر ببرم. تاو یکی از 15 دانشوی کلاس من بود. او قبلا مدرکی در آموزش پیش دبستانی داشت و حالا میخواست کامپیوتر هم بخواند. اما سرعت یادگیریش از بقیه کلاس کمتر بود. در نهایت هم این رشته را کنار گذاشت. آن کلاس بسیار ابتدایی بود. در سال 1993 اینترنت هنوز همگانی نشده بود. من به عنوان تکلیف از دانشجویان خواستم تا برایم یک ایمیل بفرستند. این روزها مضحک است ولی به هر حال گفتم برای تکلیف یک ایمیل برایم بفرستید. ایمیل اکثر دانشجویان عبارتهایی مثل آزمایش بود یا حتی اکثر نکات غیر مهم در مورد کلاس. تاو با من قرار گذاشته بود. من با اولین دختری که در دنیای دیجیتال به من نزدیک شد، ازدواج کردم. اولین قرار ما هیچ وقت تمام نشد. تاو معلم پیشتبستنی و قهرمان شش دوری مسابقات کاراته فنلاند بود. او از یک خانواده معقول میامد. البته من هر خانواده که به اندازه خانواده خودم قاطیپاتی پاتی نباشد را معقول میخوانم. او کلی دوست داشت. و از همان لحظه اول که دیدمش به نظرم زن مناسبی آمد جزئیات را برایتان نمیگویم در عرض چند ماه من و رندی یعنی گربه هم، به یک آپارتمان نقلی نقل مکان کردیم در طول دو هفته اول حتی زحمت آوردن کامپیوتر را هم به خودم ندادم بدون احتساب دوران سربازی آن دو هفته طولانی ترین زمان بعد از یازده سالگی هم، زمانی که روی پای پدر بزرگ با کامپیوتر کار می کردم است که بدون کامپیوتر سر کردم نمی خواهم بحث را کش بدهم ولی تکرار می کنم که آن دوران بیشترین زمانی است که به عنوان یک شهروند بدون پردازنده سر کردم به هر حال آن دوره را گذراندم. باز هم جزیات را برایتان تان نمی گویم مادرم در چند باری که او را دیدم تکرار کرد که این پیروزی مادر طبیعت است احتمالا خواهر و پدرم دوچار شوک شده بودند. چند وقت بعد تو یک گربه آورد تا رندی تنها نباشد. بعد هم عادت کردیم تا ازها را تنهایی یا با دوستان بگذرانیم و پنج صبح هم بلند شویم تا او به کارش برسد و من هم زود به دانشگاه بروم تا هینی که دیگران نیامده اند بدون مزاحمت ایمیل های لینوکس را بخوانم پایان بخش دوازدهم از فصل دوم تولد یک سیستم عامل پایان فصل دوم برای شنیدن شماره های بیشتر از این کتاب صوتی به وبسایت آواسام مراجعه کنید